قابل توجه کلیه اشرار غکششان و زورگیران گرامی مستقر در زندان اجی شهر کرج مدیریت زندان رجان شهر در جهت ارتقااع سطح ضرب و شتم و قمع زندانیان سیاسی برگزار می کند این زندان از کلیه زندانیانجررام خشن و ادامیها گرامی، برای ضرب و شتم، نسخ کشی و خط انداختن بر روی سراسورت زندامیان سیاسی دعوت به همکابی می نموید حقوق ثابت، دستخوش، پورسانت، همراه با جاوی خواب و سه بعد غذایگر امکان استفابده از مرخصی مابیانه به صورت نامحدود و امکان برپردابی از عفب مقام معظم رهبری به مناسبت های خاص تهیه ابزاب کار از قبیل پنج بوکس، تیزی، و مساوير ادواب تهاجمی سرد و نیمه گرم. پرداخت دیه مزرو با در صورت فوت و یا نقص عضو از صندوق دولت و استخدام تظیینی در سازمان ها و وسیج بسیج و سپاه ولی امر بعد از آزادیه بدون در نظر گرفتن سوء پیشینه چی کار کنیم خدا نه پونی داریم نه کاری نه شاغلی محصب تا نیگران نباشه چیزی رو بردار بریم زورگیری زورگیری؟ داشت ما سابقه داریم میگیرن اعداممون میکنن نه بابا اعدام چیه؟ در میفرستن رجاوی شهر استاد دانشگاه خط خطی میکنیم هم بچه ها میشیم جونه من؟ آره بابا نشنیدیم اگه تازه بعد از آزادی هم مدرک و تعییدی زندانتو ببری سپاه استخدام میکنه ای ول، رو نشستی بعد و رو, رو برین که خف کنی زندان رجاوی شهر کرچ در خدمت اشرار و غم گرامی